بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه 19 ام عوذ بالله السمعان العلم والشیاطین الامر وجن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علیه و آله وسلم ینا و نذی و ناعف الشنوب نابل محمد الله اکبر و سلام علیه محمد صلوا علیه و سلم که سبب زمان که انسان زامن مال بشود یکی یاد است که اگر مال کسی به دست انسان برسه و در تحت یدش بیاد اگر تلف بشه زامن است و دیگری اطلاف است اگر کسی مال کسی را اطلاف کند و از بین ببرد ولو او در تحتیدش هم نیامده و بر او استیلا پیدا نکرده ایزامنه است. سومیش هم تسبیب است که حالا عرض اگر مال انسان در دست کسی بیاد و دستش دست امانت نباشد که قبلا امانت رو شرحش رو دادیم اگر مال کسی به دست کسی برسد و این یاد ید امانت نباشد نه امانت شرعی و نه امانت مالکی این مال رو این شخص زامن است مثلا فرض بفرمایده کسی یه چیزی خریده و بعداً معلوم شد که این دزدی بوده این کسی که این مال رو خریده و این مال به دستش رسیده زامن این ماله اگر ای بفروشد به دومی، دومی هم زامنه اگر دومی هم به ثومی، ده دست هم که بگرده تمام این ده دست زامنه. صاحب قالیچه این که مالش دزدیده شده به هر کدوم از این ده نفر میتونه مراجعه کنه نگاه میکنه اونه کدومشون پول دارترن میبسه رو آقا میگه قالیچه این دست شما رسیده باید قیمتش رو مرحمت کنه میگیره اون وقت او خودش میدونه که چه باید بکنه حالا یا با قبلیش مراجعه میکنه یا به بعدیش مراجعه میکنه حالا اون مسئله رو الان نمیخوام ارز کنیم هر کسی که مال کسی به دستش رسیدی زامنه ده دست هم که بگرده تمام این ده نفر زامنن و مالک به هر یک از این ده نفر که بخواد مراجعه کنه و عوض مالش رو بگیره می تواند. این راجع به یاد بود که قبلا ارض کردیم. و اما اطلاف مال اگر کسی مال کسی را تلف بکند این هم زامینه ولو در تحت یدش نیامده یه دونه سنگ بر میزنه داره می به این شیشه این شیشه میشکنه. این شیشه در تحت ید ای و استیلای ای نیست شیشه تو خونه ین اینم از اون پشته از تو کوچه سنگ میندوزه تو خونه همسایه میخوره به شیشه شیشه میشکنه این زامنه پس بنابراین اطلاف کرده مال مردم رو هر کسی که مال کسی را اطلاف کند زامن است اینارو شهرهاشو قبلا دادیم و مسائلی متناسب با ای عرض کردیم و ید امانت و ید غیر امانت رو قبلا شرحش رو دادیم از جمله چیزهایی که موجب زمانه است تسبیب است نه انسان مالی رو تلف میکنه خودش نه در تحت یدش میاد اما یه کاری میکنه که سبب برای تلف میشه در قفس حبون میکنه گنجش که در میاره خودش در میره ها در قفس رو دره چیزی دره ای می می این یه کلید داره یه چیزی داره میگه اونجا در میمنده اینو باعث می되ه انجلیش میکنه این کاف داره یا گنجیش که میخود از اون میپره از اون وا میپره از اون وا میپره موقع دیگه اون شواشین داره لاش هوا میشه بود اینو در می این دل نچردی رو نگرفته این ار می شود در نکرده حیوان رو کرد ولی کم این تسبیب کرده یعنی به این معنا اون قفل قفس رو باز کرده، این گنجشگاه به او باید پریده به اون بر خورده به در لای دروا شد او بد درفت این زامنه همین آقایی که این قفل این دروا کرده زامنه اگر یه کسی یه پوست خریزه تو کوچه بیاندازه، یه مسلمانی رد بشه پاش بخوره روی این پوست خربیزه لیز بخوره بخور زمین سر کنده زانوش بخور زمین شلوارش پاره بشه این آقایی که این پوست خربیزه را انداخته زامنه این سبب شده برای تلف این مال این سبب شده برای تلف این مال بنابراین توی کوچه اگه کسی یه سنگ بزرگی بندازه سر راه مسلمون ها یا از می شود به اینکه که پوس خرزه بندازه پوس خیار بندازه پوس هندونه بندازه اینا اگر یه کسی بخورزدنی پاش پشکنه ای زامنه لباسش پاره بشه ای زامنه و هر مالی یا جانی تلف بشه این شخصی که این کار رو کرده زامنه اگر یار کسی در در آمد شد ببین که اون وقت‌ها البته حالا که نمیدونم اون وقتا, تو خیك. تو خیك اون اون وقتا رو روغن رو می‌خندن تو خیک تو خیک تو فسگوسا و حالا میزنن تو فدا نبی اون وقت میزنن تو خیک حالا کسی در این خیک رو کنه روغن سفته ولی یورش ووش هوا گرم شد آفتاب خود روغن رو اون دست به روغنا نبرده روغنها نریخته رو بیرون فقط اون بند رو رواز کرده و این آفتا خورده روغنا شل شده خود روغنا رفته ولی این زامنه این سبب شده برای تلف ما پس هر کسی که مال کسی را تلف کند خودش مباشره در اطلاف باشد مثل همون سنگی که از کردیم میزنه و شیشه کسی رو میشکنه ای تلف کرده یه وقت نه این تلف نکرده ولی یه کاری میکنه که منجر به تلف میشود این بباشره تلف نبوده سبب برای تلف بوده است چیز که پوست خربیزه میمدازه تو پوچه این بنده خدا رو او خودش اومده از اینجا رد بشه خورده زمین این که خودش نداده ولی سبب شده این پوست خربیزه سبب شده که او بخوره زمین کاری کرده که سبب برای اطلاف شده است در اینجا زامنه و از این مسائل و نظیر این مسائل زیاد میتونیم پیدا کنیم کسی که تو کوچه چاهی بکنه رد مردم مرزون بیان از اینجا رد بشن متوجه نشن که اینجا چاهه بیفته تو چاه اگه تلف بشه ای زامنه اگه به لباسش خسارتی وارد بشه ای زامنه اگه جانی تلف بشه ای زامنه دیهشو باید بده اگه دستی بشکنه پایی بشکنه ای زامنه اینا همه داخل در تسبیبه سلام علم محمد